باید گفت و شنید و دانست که چرا تا این حد بر ضد ادیان و بویج خدا سخن گفتن و در برابرشان به قول عزیزی شمشیر را از رو بستم آری شاید هر کس که با نگاشته های من رو در رو شود در گام نخوست این زدیت با خدا و عدیان را درد کند و فکر کند او بیشترین زمان خیش را برای مبارزه با عدیان و خدا صرف کرده است تا اینکه به کار خیشتن و پیش اهدافش احتافش وقت بگذارد این بار در این نگاشته سعی می تا دلایلی از این اتفاق را برای همگان باز می کنم. زچه روی تا این اندازه علیه ادیان خداوند و شاید به از نظر برخی به ضد اسلام نگاشتن در این گفتار تا حد امکان سعی می کنم به این پرسش ها دهم. شاید یکی از بزرگترین سوال هایی که بیشتر مخاطبان من با آن دست و پنجه نرم کنند آن باشد که چرا به جای تمرکز بر ارائه اهداف و باورهای خیشتن به مبارزه با ادیان پرداختند. و این اینچنین مخالفت های سفت و سختی را بهجان خریده ام که شاید می با کمی سیاست همه را در کنار هم داشته باشند و بیشتر به نشر باورهای خیش بپردد شاید نکته نخست در این ما برمیگردد به این موضوع که درباره هر چیزی در جهان سخن گفتن ناگزیر مسیرش به شاهراهی برمیخورد که در آن خدا نشسته بر تخت فرمانی صادر می کند و ما را از کاری باز میدار و به کاری امر می کنه. و این ناگزیر هماره در برابر است است که هیچ راه گریزی برای من بر جایی نمیدوند در تمام اتفاقات روزمره تا مباحث پیچیدهتر دنیا و زندگی های من در تمامی این مباحث به این اصل بزرگ برخورد کردیم در جایی از این مناظره ها ما به بط بزرگی برمیخوریم با نام خدا و یا ادیان. مفاهیمی که هیچ باه جدا کردنی از هم نیست و مبدع و معخذ هر دو از یک نگرش سرچشمه می گیرد ما ناخداگاه و در حین مناظره و مباحثهای با این سنگ های عظیم در سر راه روبرو می که حسن خطام بیشتر این بحث بوت بزرگی به نام خداست که فسن الخطام بحث را گشوده است در نظر بگیرید با کسی فیرامون مبحث آزار نرساندن به حیوانات در حال مباحثه هستید از زمین و زمان برای باورمان مدد می‌رسید تا طرف مقابل به این اصل با ارزش دنیوی مطرف شود و باور بیاورد که همه جانیم و یکسانیم اما ناگاه با جمله‌ای لوبرونی که می‌گوید خدا چنین امر کرده که ما اشرف مخلوقاتیم و بنده باید که اطاعت کند به عنوان مثال پیرامون قربانی کردن این جانداران پاک حال در برابر چنین مپسی اگر خدا را نغز نکرده باشیم و به مسافش نرفته باشیم، راهی پیش رو نداریم جز سکوت این مسادی پیرامون باورهای خیش هم چنین است و این اصل خدا جز جدا شدنی از مباحث و آرای همه انسان ماست. ما برای درمان دردهای بزرگ دنیایمان باید که به ریشه ها بگرم و در برابر چنین ریشه های عظیمی چاره بیاندیشید که با کنار زدن هر کدام از این شاخه ها باید به فردای نزدیک در انتظار شاخه‌ای که بسا بزرگتر از سابق باشید نمیتوان به این آسانی از ریشه مباحث گذشت و به مبارزه با شاخ و برک های به آن ریشه نگریست که توان آن ریشه برای آفرینی آن شاخه همیشه قدرتمندتر از دیروز پا است. است.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 و ما را در این ریشه دواندنها به کام خاک بسپارد هرچند که هر آزادهای طریقتی برای خویشتن برمیگزیند و به هدف بالایش که در دو دوردستهاست گام برمیدارد و فریاد زدنها راه رهایی دنیاست حال به هر شک و با هر ربیهای و تمام این ازم جزم ستودنی و قابل تکریم است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 ما اگر از اسلام گفتیم و بارها و بارها آن را نقد کردیم و حقایقش را به عقصه ظهور گذاشتیم نه با جبر و با اختیار نه با عرص و با اختدار مردمان راه برگذینند و آزادی خیش را بدیند که نقض آزادی به هر راه و طریقتی معنایش است برای بودن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 چه بوتی بزرگتر که ناگزیر با آن در این سالیان دست و پنجه نرم ایم؟ چه هرگاه هر چه که گفتیم اویی با تمام قدرت ایستاد پس این تقیان به جبر و آن ریشه ها در برابر ما بود و اختیار به ما آموخت که در برابرش بایستیم و این بوت اعظم را که در برابر آزادی ایستاده است به چالش بکشیم چه هر راه و هر کلام سرآغازش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 به معنای از برداشتن و به قل هاست لیک میتوان آنها را آزادی برخی دانست که خیشتن به دور از تحمیل و با دانش چنین مسیری را برگزیدند و همانگونه که ما آنها را محترم و بالا می انگاریم آنان نیز به ما خورده نگیرند که این طلاقی در بطن باورهای دو طرف زنده و قدرتمند است نمیتوان از خدا و دینی گذر کرد که جهان را زیبایی و نکویی دیوانگی را حدود و شرعیات خونده و هر جا که در برابر این زشتیها دم می و قد علم کرده این اولی به دیمسان قدرتمند در برابر من خواهد بود و هر بار فرمان به زشتی میدهد و زشت رویان بر پایش ها خواهند زد که از والا بودن اوی در آسمان ها اینان به تاج و تخت رسیدند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 حققا بسیاری با خواندن های من به این موضوع پی خواهند بود که بیشتر ذبیتم با اسلام یکی از ادیان الهی بوده و نوک پیکان همیشه به سوی اسلام بوده است باید بدانند که به واسطه زندگی در دیاری که اسلام رکن اول زیستن در آن بوده تا این حد این پیکان به سوی آنان و بابرهایشان گرفته شده است. و بیشتر از دیگر ادیان و باورها من به سوی این باور میده این سخنان و نغتا به واسطه زیستن در کنار این باور و ارسی است که گذشتگان به من و همنسلانم به یادگار دادند و در عین حال باید دانست که این دین نهای خداوندی و باورهای آنان است و باید که در گام نخست به نهای ریشه ها رفت و در برابر آن جنگید و این بار رو به انتها باید گفت عقل سلیم ایجاب می کند. در برابر ظلمی که در برابرته است تغیان کنیم و به راه آنچه تو را از آزادی دور نگاه داشته بجنگی جنگیم پس جنگ ما در پیش دیدگان ماست به دریای مانده بیکس و تنها به هر سو نگاه کرد جز آب در برابرش نبود و ناامید از این مرگ جام فرسا با امید به مرگ چشم دوخته بود تا نگاهش به چوبهای روان در آب و شناور در دود است افتاد به پیش رفت تا آنان را به چنگ آورد.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 نمیدانست به سوی چوب شنا کند و آنها را به چنگ آورد تا به واسطه آن بهتر و آسودتر به ساحل امن برسد. یا بی حراس به دریای پرتلام زند و سرآخر مدد از خویش به فرجام و رهایی رسد. راه را می شناخت و میدانست تنها راه گذر از این هلاکت رسیدن به آن ساحل دور است. اما نمیدانست مستقیم به همان راه شنا کند. و ساحل را هدف قرار داد و یا به دنبال چوبها مسیر را چند برابر کند که شاید فرجامش آسودگی و جستن به رهایی بود و یا دورتر و دورتر شدن از منزلی چه تنها راه رهاییش بود دل به دریا زدن سخت مکافاتی به بار خواهد داد که نمیدانست در این وانفسای مانده در آن به چه ریسمانی چنگ دلش به سودای آن ساحل هم در دونه بود و خطر را نمی که به جان بخرد لیک این خطر کردن او را زیدتر به منزل می میدانست زمان زیادی است برای رسیدن و تلاش های خیشدن نکار و جهان را به شاید و باید ها انگاشتن. دیگری در میان نیست نمدد از دیگران ره که شاید فرجام بدی برای او بسازد. نگاهش به چوب های در دریا افتاد. نمیدانست به سوی آنان رفتن چه فرجان که داشت شاید هر تلاش داشت به کار بست و به جریان آب خیشتن سپرده. همان گونه که خیشتن به چوب ها روان بود. چوب‌ها هم به دو دست ها روان بو و تا بعد زمانی نه چوبی در میان بود. و نه ساحل امنی که به آن دل بسته باشد.